آن پیک که نام ور که رسید از دیار دوست آورد هرز جنز خط موشک بار دوست آن پیک که نام ور که رسید از دیار دوست آورد هرز جنز خط موشک بار دوست خوش می دهد نشان جلال و جمال یا خوش می کند حکایت از و وقار دوست دل دادمش به مجد و خجلت همی برم زین نقد قلب خیش که کردم نسار دوست شکر خدا که از مدد وقت کار ساز بر حسب آرزوست همه کار و بار دوست سیر سپه دور قمر را چه اختیار در گردشند بر حسب اختیار دوست گر باد فتنه هر دو جهان را به هم زند ما و چراغ چشم را انتظار دوست کهل الجواهری به من آره نسیم سو زان خاک نیک بخت که شد ره دوست مایی معآستانه عشق و سر نیاز تا خواب خوش کرا بردن در کنار دوست دشمن به قصد حافظ اگر دم چه باد مننت خدای را که نیم شمشار دوست